گلهای جاویدان برنامه شماره سد و پنجاه Oh, yeah, Javi,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 دیدن روی تو و دادن جان مطلب ماست. پرده بردار ز رخسار که جان بر لب ماست. بود روی تو پرستیم و ملامت شنویم. بود پرستی اگر این است که این مذهب ماست. این عبیات ارفانی دلنگیز و شیوا از سراینده ایست فرزند شاعری متخلص به بهجت. مردی وارسته، معلمی واقعی و صورتگری چیرده است. وی آوای دل خیش را گاه بر پرده بیرنگ با رنگها و سای روشنهای دلپذیر بیان می و گه در ساغر نظم نسار صاحب دلان می نمون. در تیرگی زورف کشیدم روخش از بر گفتی که مهی را به شب تار کشیدم که صورتگری نقش دهانش را کشند گو در سخن آدت لبش تا من نشانش را کشند بادگاه شیراز است تخلصش برد و به فرصت دوله شیرازی مشهور فرصت شیرازی از شوهرهای به نام قرن اخیر است و از مردان خدمتگذار فرهنگ ایران از فرصت شیرازی علاوه بر قزلیات ترجیعات مقطعات مصنویات و مراسی که خود در دیوانی جمع و یک بار به چاپ رسانیده، و منشاعتی باقی است. جمله مختصری از تاریخ مشروطیت ایران که به نام حالات وی در آغاز دیوانش ملحوظ و منظور است. دیوان وی بار دیگر اخیرن به حمد علی زرین قلم با تسحیح به تب رسیده است. در قزل های فرصت کمتر عبیات سوست به نظر میرسد. اشعارش را میتوان تا حد قابل توجه و ملاحظه یک دست چمارد. و این میرساند که سراینده بیشتر در بند کیفیت بوده تا کمیت. فنیز از منتهای دقتی که در تشبیحات و استعارات و ارسال و مسئلها به کار برده میتوان گفت که فرصت همواره کوشا بوده تا اشعارش ساده، روان و بی تکلف و تسنو باشد. در بیان مفاهیم و به هنگام ترسی کلام رایه ای از تحصیل نفوز حافظ به مشام رسد. Thank you. شیرین تما راست حلال این خبر ظاهد از این زوق که در مشرب ماست ما در پیال اکس رخ یار دیده این ما در پیال اکس رخ یار دیده این ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما شبیه گره ز سر زولفیان باز کنم ببین به بهانه مگر قصه اش دراز کنم ما عاشران. گر از ظلف یار باز کنید معاشران گر از زلف یار باز کنید شبیه خوش است بدین قصه اش دراز کنید از پیروان سبک سعدی و حافظ است ولی ارادت او به حافظ به است که در اواخر عمر شست و ساله خیش برای خود گوری در جوار آرامگاه لسان و آماده کرد که طبق آخرین میلش در آن مدفونش ساختن حفظ تو در حلقه ما دوش سخن بود گویی به مسل شرخ پریشانی من بود لعلت به سخن آمد و کس باز ندانست شکر به لب لعلتو یا آنکه سخن بود آن خال سیه بود بران آرز سیمین آن خال سیه بود, بود بران آرز سیمین یا نقطه از قاری بربرگ سمن بود Thank you. Gay pistol Pi oh, hey, پشمکین جار و ستم لطا اتا مهر و وفا به خدا گرز تو باشد به خدا غرض تو بود شاد Plan and ام این حمیدسر حَمِ سَرْ گَشْتِ یَدَار ارسَیِش دل بِچوگان سَر زُلْفِ out of the top. A B B B B B دا ki ما دیدار tho دل همین پیش ف دیده به هر سو Oh از چه بر هم زنی بود صبح از چه بر زنی بود صبح گی سوی اوش شفته در حلقه گی ust maro jo o o o o o o Thank you. ساد از پیروان سبک سعدی و حافظ است ولی ارادت او به حافظ به حدی است که در اواخر عمر 69 ساله خیش برای خود گوری در جوار آرامگاه لسان غیب آماده کرد که طبق آخرین میلش در آن مدفونش ساختم با دل خیش ز جور تو حکایت کردم با دل خیش زدور تو حکایت کردم آه کس خیش به بیگانه شکایت کردم مجمع ما همگی دوش پریشان گفتند از سر زلف تو چون یک حایت کردم قصه ی روز قیامت همگی آمد راست قصه ی روز قیامت همگی آمد راست وستی از قد بلندت چو روایت کردم گفتم از فرصت دلخسته نظر باز مگیر گفت سویت نظری هم به انایت کردم Show. روشین شکستی روشین شکستی به یک پا به دو سرمت Nmrun Nmrun pe چستی می یک تو 200 جا آوار امروز به یک جا تو صد خوب جا این بود جاویدان از گلزار ادب ایران گلی که هرگز نمیرد شب خوش آن به سم رسید برنامه شعر 157 گلهای جاویدان بود که با شرکت آقایان عبادی تجریگی کسائی فاختئی جلیل شهناز حبیب الله بدیئی اکبر گلپایگانی و امیر ناصر افتتاح تنظیم گردیده گویندگان، روشنک و ثابتیمانی